ای مزدا، دروندانی که از وحومند روی برتابند، رنج کشند و آزار بینند، راستان که چنین نکنند، چنین نبینند. راست کردار اگر هم کم نوا باشد، نزد راستان گرامی است و دروند اگر هم توانگر و توانا باشد، بی ارج است. ای مزدا، کسی که اندیشش نیک یا بد باشد و هرچرا که به دلخواه برگزیند، دینا و گفتار و کردار و گروش اونیست چنان گردد و سرانجام خرد توست که نیک و بد را از هم جدا گرداند باشد که شهریاران نیک با کردار نیک و دانش و پارسایی بر ما فرمان برانند نه شهریاران بد برای آبادی جهان باید کوشید جهان را باید به درستی پرورانید و آن را به سوی روشنایی برد به راستی زمین پناهگاه نیکی برای ماست زمین به ما و هومن و توانایی میبخشد ای مزدا که مردم تو را در خواهند یاف کی این زهرابه دیوان یاور بر خواهد افتاد چیزی که کرپنهای طبعکار با آن مردم را میفریبند فریبند و شهریاران استتمکار بدندیش با آن بر کشورها فرمان میرانند. ای مزدا کی عشا و آرمیتی در پرتو آشتی آشتیخواه و ایمنی آفرین پدیدار خواهد شد چه کسانی ما را در برابر دروندان تیر دل رامش خواهند داد چه کسانی دانش و بینش و هومن را درخواهند یافت ای مزدا سوشیانت یا سودرسانان کشورها کسانی خواهند بود که با پیروی از وحومن بایسته خود را به انجام می رسانند کردارشان پایه اشا و آموزش های توست و به درستی برای چیرگی و برافکندن خشم گمارده شدهاند. کسانی که با خرد بد و با زبان خود خشم و رشک را میافزایند و مردم سازنده و پرورشگر را از کار خود باز می‌دارند و با کردار زشتی که دارند در پی کوکاری نیستند دیوانی هستند که نهاد و دعنای مردم را به دروغ و گمراهی می کشانند. روان شهر یاران ستمگر و بدکار و بدگفتار و بدنهاد و بداندیش و دروند از روشنایی به تیرگی باز میگردد به راستی اینان باشندگان سرای دروغند